دوره ابراهیم الله الرحمن الرحيم. يُخْرِجُنَا الله الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ با رحمت است الیف لام را تاوی بر تو نازل کردیم تا به واسطه آن مردم را از تاریکی های جهل و ظلم به نور آگاهی و آرامش رهنمون باشید به ازن پروردگارشان به راه خدایی که قدرتمند و است هدایت کنید هدایت به راه خدایی که هرچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. پس واقعی بر کافران از عذاب طاقت فرسایی که در انتظارشان است هایی که زندگی دنیا را به زندگی جاوید ترجیح دادند هایی که با حیله های مختلف راه نجات بخش خدا را بر مردم می بندند و آن را سخت و طاقت فرسا جلوه می تا بر مردم مسلط باشند بدانید که اینها در اعماق گمراهی ما هیچ پیامبری را بر قومی نفرستادیم مگر آنکه امر کردیم به زبان همان قوم سخن بگوید تا حقایق را برای آنها تبیین کند بدانید که خداوند هر کس را صلاح بداند در گمراهی میگذارد و هر کس را صلاح بداند هدایت میکند و او قدرتمند و حکیم است موسا را با آیات قیش فرستادیم که ای موسا قوم خود را از تاریکی های جهل و ظلم به نور آگاهی و آرامش رهنمون باش و به آنان روزهای خدا را یادآور شد زیرا در آنها برای هر کس که صبور و شکر است نشانه ها و عبرت است. و انگام که موسا به قومش گفت یاد آورید نعمتهایی را که خدا به شما عطا کرده است آن هنگام که شما را از دست فرعونیان نجات داد همانهایی که به بدترین وجهی شما را شکنجه می کردند. پسرانتان را سر می‌بریدند و دخترانتان را زنده نگاه می‌داشتند. و در همه اینها امتحان بزرگی از جانب خداوند وجود داشت و یاد آورید آن هنگام را که پروردگارتان اعلام کرد اگر شکر نعمتها را به جا آورید بدون تردید آنها را افزایش می دهند. اما اگر کفران نعمت کنید بدانید که مجازات من سخت است و موسی گفت ای مردم اگر همه شما و اهل زمین کفران نعمت کنید و اقایق را انکار نمایید، باز بدانید که خداوند بزرگ بینیاز و در خور تاگش است آیا اخبار سرگذشت کسانی که قبل از شما بودند چون قوم نوح و عاد و سمود و کسانی که بعد از آنها آمدند به شما نرسیده است از حقیقت ماجرای آنها کسی جز خدا آگاه نیست پیامبرانشان با دلایلی روشن به نزدشان آمدند اما آنها از روی انکار دست هایشان را به سوی دهانشان بردند و گفتند ما رسالتی را که شما آورده اید انکار می‌کنیم و به چیزهایی که می‌گویید و ما را بدان می‌خوانید سخت مشکوکیم پیامبرانشان گفتند آخر مگر میتوان در وجود خدایی که آسمان‌ها و زمین را آفریده شک کرد اصلا شکی وجود دارد خدا شما را میخواند تا از گناهانتان درگذرد و به شما مهلتی دیگر دهد گفتند شما پیامبران بشری هستید مثل ما فقط می خواهید ما را از آنچه پدرانمان پرستیدند باز دارید به جای این حرفها دلیل روشنی برای من بیاورید. پیامبرانشان گفتند درست است: ما نیز بشری مثل شما هستیم اما بدانید خداوند بر هر کدام از بندگانش که صلاح بداند، نعمت رسالت عطا می کند و ما سزاوار نیستیم که معجزه و دلیلی بدون ازن خدا برایتان بیاوریم بدانید که اهل ایمان بر خداوند بزرگ توکل می کنند. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سهلنا ولنصبرن ولا چگونه بر خداوند توکل نکنیم در حالی که او ما را به مسیرهایمان هدایت کرده است پس نسبت به آزار شما صبر و استقامت پیشه میکنیم زیرا توکل کنندگان بر خداوند بزرگ تبکل می کنند. و کسانی که حقایق را انکار کردند به پیامبرانشان گفتند شما را از سرزمینمان بیرون میکنیم مگر آنکه آیین آین ما را قبول کنید. پس خدا بر پیامبران وعه کرد حال که چونین است بدون تردید ظالمان را حلاک می کنید. و شما را به جای آنها در زمین مستقر می نماییم و این موفقیت از آن است که از مقام رفیع من پروا داشته باشد و از مجازاتم بهرازد اهل ایمان از خداوند تقاضای فتح و پیروزی کردند و به دنسان هر ظالم گردم کشی نابود گشت و به دنبال او دوزخ است تا در آنجا از آبی متعفن سیراب شود آبی چنان بد و متعفن که به زحمت جرعه جرعه مینوشد و اگر به میل خودش بود هرگز نمی آشامید مرگ از هر سو می تازد و با آن که آرزوی مرگش را می کند هرگز نمی میرد زیرا از آبهای سخت به سراغش میآید. مثل مسئله اعمال کسانی که پروردگارشان را انکار کردند چون است که در یک روز طوفانی باد شدیدی بران به وزد در حالی که آنها توانایی نگهداری دستاوردشان را ندارند و این است اعماغ گمراهی آیا نمیبینی بینی که خداوند آسمان ها و زمین را به حق خلق کرده است و اگر به قاعد می تواند همه شما را نابود کند و مخلوقات جدیدی بیاورد و این کار برای خدا دشوار نیست وقتی همه در پیشگاه خداوند حاضر شوند ناتوانان به مستکبران گوگند ما در دنیا پیرو شما بودیم آیا اکنون می توانید برای من مفید باشید و چیزی از عذاب الهی کم کنید؟ مستکبران گوگند اگر خدا ما را هدایت کرده بود ما نیز شما را هدایت می کردیم اما اکنون همه ما در یک وضعیت قرار داریم چه صبر کنیم و چه بیتابی کنیم هیچ راه خلاصی نداریم و که کار تمام شود شیطان گوید خداوند به شما وعدهی به حق داد و آن را عمل کرد من نیز به شما وعده دادم و عمل نکردم من در دنیا بر شما تسلطی نداشتم غیر از آن که شما را دعوت می کردم و به چیزهای واهی می خاندم. شما نیز دعوت مرا اجابت می کردید پس اکنون مرا سرزنش نکنید، بلکه خودتان را ملامت کنید. حال، نه من نجات بخش شمایم و نه شما نجات بخش من. بدانید که من از آن زمان که مرا و وسوسهایم را پرستش می کردید، بیزارم. راهی نیست و ظالمان گرفتار عذاب دردناکند. و اما آنها که به حقایق ایمان دارند، و اما سراسر خوبی و خدمت است به بهشت های وارد چمند که نرها در آن جاری است و در آنجا به فرمان خدا جاودانه میمانند در حالی که با سلام به یکدیگر خوشامد میگویند آیا متوجه نشدی که خدا چگونه مثل زد بدان که سخن پاک و با حقیقت مثل درخت پاکیزه است که در زمین محکم گشته و شاخه سر به آسمان کشیده است این درخت به ازن خدا در هر زمان میبه را به سمر می نشاند و خداوند برای مردم و سلها می زند. شاید حقایقی را که فراموش کرده به یاد آورند و مثل سخن زشت و ناحق چون هرزگیاهی پلید است که آقبت از زمین کنده خواهد شد و ثبات و قراری نخواهد داشت خداوند اهل ایمان را به خاطر سخنان متین و استوارشان هم در زندگی دنیا و هم در آخرت ثابت قدم می دارد و ظالمان را در گمراهی می گذارد. بدانید که خداوند هرچرا صلاح بداند بدان عمل می کند لا اله آیا کسانی که نعمتهای خداوند را کفران کردند و قومشان را به نابودی کشندند مشاهده نکردی؟ آنها به جهنم وارد می شوند و چه بد است این جهنم؟ به کسانی که برای خداوند شریکان و شدند تا مردم را از راه نجات بخش الهی منحرف کنند بگو اکنون از دنیایتان لذت ببرید که به زودی سرنوشتتان به آتش ختم می شود به بندگان من که اهل ایمانند بگو پیش از آن که روزی برسد که دیگر در آن داد و ستدی نباشد به هیچ پیوند دوستی به کار نیاگد نماز به پادارند و از آنچه روزیشان کردیم در نهان و آشکار انفاق کنند الله است که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان بارانی فرستاد تا به وسیله آن میوه ها را به ثمر نشاند تا روزی شما شود. به کشتی ها را زیر سلطه شما قرار داد تا به ازن خدا در دریاها به پیش روید و همچنین شما را بر رودها مسلط کرد و خورشید و ماه را که همواره در مدار خیشند در خدمت شما قرار داد همچنان که شب و روز را در اختیارتان گذاشته است. را خواستید خداوند در اختیارتان گذاشت بدانید اگر بخواید نعمت های او را بشمارید هرگز نمیتوانید آمار آن را بگیرید حقیقتا انسان نسبت به حق ظالم و ناسپاس است و یادار هنگامی که ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را محل امن قرار بده و من و فرزندانم را از پرستش بتان دور کن پروردگارا، آن بوتان بسیاری از مردم را گمراه کردند، پس هرکس از من تبعیت کرد از من است و هرکس از دعوت من سرپیچی نمود، پروردگارا، تو آمور و با گذشتی. پروردگارا، من برخی فرزندانم را در چون این سرزمین خشک و بی آب و علفی کنار خانه مقدستو ساکن کردم تا نماز به پس قلبهای مردم را چنان کند که همواره در تب و دیدارشان باشند و از هر نعمتی روزی شانده شاید به مقام شاکران نائل شوند پروردگارا تو از هرچه چه نهان می‌کنیم و آشکار می‌سازیم آگاهی زیرا هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خداوند مخفی نیست ستایش خدایی را که در سن سالخوردگی اسماعیل و اسحاق را به من عطا کرد حقیقتا پروردگار من دعاها را خوب میشنود رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی ربنا وتقبل الدعاء من و فرزندانم را بر پاکننده نماز قرارده و خودت دعای ما را بپذیر پروردگارا مرا و پدر و مادر مرا و تمام اهل ایمان را در روزی که سابرسی آغاز می شود بیامرز و مپندار که خداوند از عمل کرد ظالمان قافل است خدا آنها را تا آن روزی که چشم ها مات و مبهوت می مانند محلت داده است در آن روز عذاب از تعجب گردنهایشان برافراشته و سرهایشان به آسمان است و حتی از ترس پلک نمی‌زنند. در حالی که قلبهایشان از خوف فرور و خالی گشته است مردم را نسبت به روزی که عذاب به سراغشان میآید آید همان روزی که ظالمان گویند پروردگارا مدت کوتاهی را به ما ده تا دعوتت را بپذیریم و پیامبرانت را پیروی کنید اما به آنها گفته می شود آیا شما نبودید که قسم می هیچگاه زوال و نابودی برایتان نیست؟ آیا شما نبودید که درست در همان منازل و کاخهای کسانی که به خود ظلم روا داشتند ساکن شدید در حالی که آنچه را بر سرشان آوردیم به خوبی میدانستید؟ و مسئله های زیادی برایتان زدیم. آنها نقشه های فریب در حالی که خداوند از نقشه آگاه بود هرچند از یلتشان کوه از پای در میآمد و مپندار که خداوند از وععد که به پیامبراننش داده تخلف خواهد کرد. خداوند قدرتمند و انتقام است. در آن روز که این زمین و آسمان ها به چیز دیگری تبدیل شوند همه آنها در پیشگاه یگانه قهار حاضر خواهند بود در آن روز مجرمان را کنار هم با غل و زنجیر خواهیدید لباسشان کالبدهایشان از ماده بدبوی سوزنده است و صورتهایشان را آتش پوشانده است تا خداوند هر کس را نسبت به دستاوردش جزا دهد بدانید خدا به سرعت به و رسیدگی می کند این قرآن ابلاغی است برای مردم تا نسبت به مجازات الهی انذار شوند و بدانند که او خدای یگانه است و خردمندان نیز پند بگیرند <تصفيق> ما هو ایله واحد و لید الالباب صدق الله العلي العظيم. <تصفح> واری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و وسلم و سلم